بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه 19 همه مهرمه 89 رحمتی هواقع قضیه بود یه مطلب مختصنی در کلمات اوستاد میده بود چون آه. نسخن... آه. گاهی وقت مسائل جمعی گاهی در این بیشتر تأثیر داره در این نقلی که در مطلب آخر مقوم ناینی عرض شده بود که در این صفحه 266 از گلده پنسی برسا تطمیم ما سبر سابراً گفته می شود حالا من توضیحش حرز بکنم مرحوم ناینی در خلال صحبتاش بود یه وقتی روزه کردن که شرفش گذشت برای برشه فحص که با عنوان کشف از مراد موتکله اون وقت بل. آخر اون صحبتشون میفنن لا یکون اگر اینجور باشه که مثلا عدل شعری فحص مخصص منفصل داره لا یکون در عمومات تفیه ما یعنی فری کتاب و سنه ظهور و تصدیقی کاشفانه عن المراد قبل الفحص ان مخصصات ها بعد با دو ملکبه تحبیل دارم من الطبیعی انم آلم یکون به حاضر ظهور یعنی از ظهور تصویری، از کاشف ان المراد قبل الفحص انها حاله دا تکون و حجتن یه سه حال اعتماد و علیه کی این تعبیر به ظهور تصویری رو من یک توضیحی اعظم ارز کدم این باید سابقاً گفته شد حالا مجبوریم می اینجا جاید نکنم از ظهور تصویری و عادتا در مقابل ظهور تصوری به می درد کلمه تصور عادتا در منطق به معنای به اصطلاح ادراک یک مفهوم بسیطی است که درش نسبت نیست مثل زید هم هر و, و آسمان الارد. و در مقابل او تصریفی در جایی که نسبت باشه این اصطلاح منطقی است در اصطلاحات اصولی ما این ظهور تصریفی یک معنای واحدی نداره خصوصیات رو میکنه گاهی مراد از ظهور تصریفی در مقابل همین ظهور تصوری است یعنی فهم بیان به حساب نسبت به این معناست طبعا این مقدار از معنای ظهور تصریحی برمی‌آید به لغت به واسه و منشأش واسه لغت اما گاهی اوقات مورد از ظهور تصریحی در عبارات آنیان ظهورات دیگری است که اینها برمی‌آیند به دلالات به اصطلاح اکتکازی عرفی یا به عنوان جامع دلالات سیاقی اینها رو هم اصطلاحا ظهور تصریحی میاد مثلا فرض کنید گفت که اکرم زیدن خب این که معنای اکرم در لغت عرب چیست و زید معناش چی خوب میشه ظهور تصوری و اما این که مثلا این که اکرام بکن زید را مفهوم جمله گاهی به این میگن ظهور تصریحی این یک معنای ظهور تصریحی این ظهور تصریحی همون در مقابل تصوری است و این نیاز فقط به لغت داره بیش از لغت چیزی نمیخواد اما گاهی اوقات ظهور تفسیری نکات دیگری است که این نکات دیگه عادتا مثلا در کتب ادب در مسیر علوم بلاغت اصطلاح بررسی میشه اما به نحوی خیلی تام و جامع و شامل و کامل در مباحث اصول مورد بررسی قرار تو اصول این ظهورات تفسیری بیشتر محله توجه و اینایت توجه مثلا این اینها یکی هم نیستن ظهورات تصدیقی متعدد میان مثلا ظهور تصدیقی اول اینست که وقتی گفت اکرم زیدن مثلا فرصم وجوب اکرام این مراد جدی است. یا نه مراد جدی ایشان استحباب وجود نیست این کشف مراد جدی در مقابل مراد استعمالی مراد استعمالی رو میان. ظهور تصوری با اینکه این تصور نیست تصدیقه لکن این که چی رو ظهور پس این کلمه ظهور تصدیقی داره یه معنای واحدی نیست گاهی وقت مراد از ظهور تصدیقی یعنی مراد جدی در قبال مراد استعمالی مثلا اینجا مراد نامی همین چرا؟ چون وقتی گفت اکمال علماء بعد از یک سالان گولاد توکرون خود سارال علماء چون قیده منتصره با این قرنه منتصف پیمی بریم که مرادشون از اکثر علماء غیر خساب بوده. یعنی می‌فهمم اون مراد استعمالی ایشان کل را علماء بوده لیکن الان تهمیدی مراد جدی ایشان خصوص عدول علماء لا لاتو پرم فسار علماء مراد جدی را الان تهمیدی. این فهم مراد جدی در مقابل مراد استعمالی استراحاً تو اصول استمی ظهور کسیری. این ظهور تصدیری یه است که اعتماد میکنه بر به اصطلاح قرائن سیاقی یا مثلا قرائن منفسی به اصطلاح این قسم از ظهور تصدیری که مراد میشه ظهور تصدیری دیگه داریم که مثلا من با مثال وقتی گفت اکن زیدت ایشون قاصده و جدییت و نهی که جد،, جد اونجا قاصد هست به عنوان حضل و شوخی و مثلا جوکر اصطلاح امروز ما گفته نشده اینم یک زور تصریحی است که هر کسی که کلامی رو به کار نمی قاصد اون کلامه اینم یک ذور تصریحی است این امر عرفی و اخل. ما همینطور حساب بکنیم ذورات تصریحی که گفته شد یکی از ذورات تصریحی که ما یعنی فقهای شیعه به کار میبرند این است که در اینجا در مقام بیان حکمت الهی است تقیه نیست اینم یک زور تصریحی نه خب ممکنه حاصل باشه گفته اما کل کلام طبیعتاً صادره شده حاصل معنا هست این هم یه ذور تصریحی چه رابطه داره این شکلی رو استوری این اسمش ذور تصریحی یعنی اون مراد جدیش نیست که مثلا گفته این کار رو انجام بده دلت مرادش که انجام نده این ذور تصریحی جایی به این معناس یعنی تقییه شده در این مسئله یا تقییه نشده اگر بلاخره روخوا حالت یه این اصطلاحه دیگه مثلا مراد جدی اینه ولی به حسب ظاهر گفتن این انجام بده لا که این چون طبیعیه مرادش نیست این یه جور ظهوری از تصریحی اصلا درجات متبایل و مختلفی داره از این جهت به او وصف میشه و اون ظهور تصریحی دیگه‌ای که در مانع نفی به خوره که ما بین این دو تا فر گزشتیم خود الفاظ عمومه خود الفاظ عموم از کردیم این توضیحش سابقاً گذشت ما جای بحث نداریم که در لغت تا در زبان الفاظی برای عموم داریم میسی حکم کلاله اما ایده از اصولی الفاظ عموم رو قبول نکردن این در حقیقت اگر خوب بخیم تحقیق بکنیم در حد زهور تصوری قبول کردن اما در حد ظهور تصدیقی قبول نکردن از سهر معتزا مثلا میگه الفاظ عموم مشترک است بین آم و خاص و قبول نمی کنیم این در تقیقه یه واقع خوب تحلیل بکنیم این همین ظهور تصدیقی به قبول و ولذا ما در سابق به جهه ظهور تصدیقی تعبیر دیگری کردیم. گفتیم یک آم لغوی داریم یک آم قانونی داریم آم لغوی خوبه هم در لغت عرض در لغت فارسی، بود هر همه شده برای عمومتون تو اکم کل آقا. این اینه آم لغریست در لغری بودنش برس نیست اونی که اشتار کردن اسم مرحوم سیر مرتضا اونا قائل هستن که اینها عام قانونی نیستن ولی ازا در مبارس آم خاص ما یک عده منچه داریم این منچه مختلف هست. این برای این که چون که بناس ما باید آم هستیم برای شما جمعیتی رو بخوایید دسته بندی بکنید اولا مراد از آمه قانونی چیه؟ اصلا مراد از این آمه قانومی همگر آمه لبزی نیست نه مراد از آمه قانونی قاعده آمهی سجع شده و هدف از او از رجوع علیه ها انده این نقطه کش احسید قاعدتان آمه وزد رجوع علیه ها انده این نقطه ملاحظه شده که هدف اصلی این است اگر شما شک کردید به او مراجعه کنید. ولی از در اصول، در مواحث اصولی ما دو سنخ مواحث دارید. یک سنخ مواحث ما این است که کدوم الفاظ و از برای این معنا مبحث دوم این, این که کدوم شک ما با آن بهمیداریم. اگر اون یاد چون باشه مثلا شبهات مصداقیه رو میگن با آن بر نه میگه عظم العلماء نمیزج عالم نه این شک رو با آن نمیفهمن بر بحث دیگری که گذشت شبهات مصداقیه مخصص بود مثلا گفته عظم العلماء لا تو شک و شخصی عالم هست لکن عملی از او صادر شده مصداقیه نه مفهومی عملی از اون صادر شده نمیدونیم قیبت محرمه یا قیبت مجازه نمیدونیم فاسق هست یا فاسق نیست از کردیم از علماء من هم صاحبه اروه اینا قائل هستن که این شک رو با آن برمیداریم لقدر شک در شبه مصداقیه مخصص. چرا چون این عالم که آلمه نمیدونیم فاسق شد یا نه، نمیدونیم کلام قیبت حرام بود یا نه. خب فاس احمر علما قاعده عامه است تصلح للرجوع ها اندش برای این شک ما در ثبوات نصاقیه مخصص باشه در مقابل این توضیحش بزنش که نه مشهور بین متأخرین من هم از استاد مرحوم‌های دیگه مشهور بین اینها این است این این که این شک رو با عام نمیکنیم برداریم آم به درد رفع این شک نمیکنه خوب یه خطر این شک رو شکل شبهی مصداقیه مخصص رو با آم نمیتونیم بردارید پس یک بحث اینه که آیا چه شکل قابل حاضرت با عام این یک بحث این مبایث آم خاصی که ما میتونیم همینه این مبایث آم خاصی که در اصول میخونید دور بر همین دوست مکلمه یکی اینکه کجا آم هست اصلا آم داریم نداری حالا آراء را دستبندی کنیم یک اونی که مشهور رو عطول که آم داریم آم قانونی نه آم لحظی آم لحظی که تو لغت درسیدی میشه. آم قانونی داری مثل عکم کل عالم این آم قانونی هست در مقابل مثل مرمون سلوز آز تونگی که ما آم نداریم این که میگه ما آم نداریم مرادش اینه که آم قانونی نداریم چرا چون تخصیص خورده چون تخصیص خورده همش احترال به اصطلاح آم تا وقتی آمه که اون حیبت شکسته نترد شون تحسیز خورده لذا اینا باید با قرارن حالی و مقالی اصفاد بودیم آم خود لفظ کفایت نمیکنه این رأی اول کسانی که اصولا قائلن ما آم قانونی نداریم این آم قانونی رو میشه اسمش ظهور تصدیقی هم بگذاریم جایی دیگه اینکه شر هست ما اش... به او ما شرط تم سوک خب یعنی باید با شواهد ات بکن عامه ولا خودش در لغت ورز نشده این راج بین این, این مطلب که شما فهمی من ندم از سرمون به کلام سای قبولی هم چ مطلب به من تا در کلمات ج مت عامه آمده عرفی و قانونی با تعجب اینکه شار خودش یه عرف حسابی نه عرف هست عرف مراد من از قانونی و عرف خاص در مقابل لغوی عرف عام در این که در عرف عام الفاظ عموم داریم جای بحث در عرف خاص هم دل میاد نه اورف عرف قانونی باشه بخفه ما میشه عرف خاص رای دوم رای کسانی که گذشت سابقا ما عام قانونی داریم مگر تخصیص خورده یک تخصیص خود دیگه عام قانونی نیست که توضیح داده شد اینم یه راهیه که ایده رفتن تا عام تخصیص خود هم میگه بگوی عالم کل عالم یک طایفه خارج دیگه این عام قانونی نیست البته اینا تعبیرشون اینه که دیا عام حجت نیست من احتمال دادم مرادشون چیز دیگری باشه برای اولین بار مرادشون این اصل یعنی این نکته این بوده در حقیقت نکته بحثشون چون گذشته می‌خوام توضیح ما سبر هم بشه نکته بحثشون همون بحثیده که علمای بعدی ما به دیگری تعبیه کردن اونایی تعبیری که من من احتمال دادم البته ارصم جای نای که این دو بحث یکی باشه بحثی که عام ما دارن آیا آم بعد از تخصیص متانول به نقیز خاص میشه یا نه مثلا گفتن که اکرم العلماء که اون فساغ علما و خون اکمل علما اینجا میشه اکمل علما غیر فسا آیا متعنونه به نقیز خاص میشه؟ این بحثی که اصولی متاخر ما مثل مرحوم های پویدیان و قائل شدن که متعنون میشه در محاول مثل مرحوم محقق ارابی و محقی اسمانی که آره متعنون نمیشه بحثش بذاشت من احتمال میدم قدرهای اصولی ها به این صورت مطلب کردن آم بعد از تخصیص حجت یا نه یعنی آم بعد از تخصیص هنوز روانان یک آم قانونیست که میشه بونه تمثل کرد یا نه خب این هم رأی دوم پس رأی دوم میگه ما آم قانونیم داریم بکنی شرطش اینه که تخصیص نخواد تا تخصیص خود دیگه آم نیست. البته مشغوره بین اصولی و از سرین همین هم سهیه بعد از تخصیص هم ه یعنی قاعدتان عامه تسلح به رجوع علیه ها این و نرفه شهر بعد از تسلح خب دیگه اگه نداشت باشیم لارا کلش این قدیل که میگه حالا بر فرص نداشت باشیم تسلح توام و عموم از تار میوه میشه رای اول با نتیجه با اول یکی احتمال سوم در اینجا اون توجیهی بود که ما برای کلمات این عرض کردیم. و اون حاصلش که ما در این خاص، در این شریعت مقدسه آم قانونی داریم اما در سنن پیمانبره در کتاب آم قانونی نداریم این هم یه تره که ما مطبخ کرد. مثلا قلقوب العقود چون در کتاب آم قانونی نیست اما شروع دشروطیه چون در سنته آم قانونیه دقیق فرمدیم بیاییم تفسیل بقاید بشیم ما بین اون مصدر حکم اگر در کتاب باشه عام قانونی نیست و اما اگر در سنت باشه عام قانونی هست. هم قول و فعل هم بود نه, نه, نه این هم رای سوم. رأی چهارم هم همون رأی که ای گفتند و اون این که اگر آم تخصیص به متصل خورد این دیگه به حساب قانونی هست اما علی تخصیصش رو منفصل بود نیست شبیه این بحث همین که ما در گذشته تو دو فیش نجلس جلسه آ از کلمات مرحوم استاد در کردیم این شبیه اینه از تعبیر مرحوم استاد اینه که اگر مخصص متصل باشه مانع انعقاد ظهور عامه و اگر مخصص منفصل باشه مانع حجیت عامه این اسطلاح معروفیه؟ یعنی اگر گفت اکم العلماء این در فسا اصلا زهور رو منعقد نمیکنه. اما اگر گفت اکم العلماء زیب محبوب لاتو کن فساق العلماء ظهور منعقد شده حجیتش به هم این چند بار مرموم اصداد این مطلب رو به کار بردن ما سابقا هم مناقشه کرده بودیم ارز کردیم به جای این تأبیر اگر این تأبیر رو عوض می کردیم به این صورت یک کمی سازمان بهتری به نظر می یعنی مراد اینه که عام اگر تخصیص منفصل خورد این همون ظهور تصوریش محفوظه اما اگر تخصیص خود، میشه. میشه. به متصل خورد ظهور تصریحیش محوش میشه شرایطشون تغییر ظهور تصوری تسیی نه فرمودن قبول دارم بنده صافو تخصیص هم تغییر میکنه پس بگیم مراد از ظهور تصریحی در اصطلاح آغایان یعنی در که بنده عرض میکنن نا همون مراد حجتی که در تلمات آقای خوی آمده ایشون تعدیر به خجت کردن بگی مراد از حجت اون ظهور تصدیقیه پس مرادشون از ظهور که اول میفرموند مانع ظهور همون ظهور تصوریه در حیفن که معنای لغهیه اما حجیت اون قانونیه معنای آمه ها نیست ما ارز کردید به نظر ما اینجور میاد که آمه چه تخصیص به متصل بخوره به چه متصل بخوره در این جا فرقی نمی کنه. فرقی که میکنه فقط به ناحیه لغویه که اون تاثیر در بحثه اصولی نداره در ناحیه لغوی فرق میکنه روی حکم علما الا الف صالح میگه اکل العلماء از یک موضع بلا به ناحیه لغوی فرق میکنه اما به ناحیه اصولی هیچ فرقی نمیکنه. وقتی گفت اکل العلماء بر دولت حکم فصاحل العلماء معنی اکنون علمان میشه اکنون علمان غیرن فستاد پس این به ذهن ما این مطلبی به که مرموم استاد دینی سورد رو دارن و نایمی هم دارن زیاد هم دارن که اگر مخصص متصل شد مانع انعقاد زهوره اگر مخصص متصل شد مانع حجیت زهوره نه انعقاد ما به برای برمیکیم همیتر بشه اینجوری بگیم بگیم اگر متصل شد در آمده لغایت تأثیل کل یا عمومیت لغایت ایجاد نمیکنه. اما اگر منفصل شد در اینجا تأثیر نداره چون عموم به ازهر زهر منعکس شده. اما به لحاظ هوجیه هیچ فرق نمیکنه. به لحاظ هوجیه و به لحاظ تأثیری و یا این معنا هیچ فرق نمیکنه. اکثر اولمای علل فساد من از اینکه لاتوپر فس اکثر اولمای غیر فساد اون هم تأثیر میاره. اکتمل العلماء را تو فصل سوال العلماءی که فصل هم باشه اونم معنی شه که اکتمل العلماء غیر فصلهی شاید به لحاظ اون ظهور تصدیقی و به لحاظ قانونی هیچ فرقی با هم دیگه در این جهت ندارن این تفریعی که استاد گداشان نایمی گذاشتن عده گذاشتن، این از اصطلاح اصولی و از مهمی اصولی خارج این یه نکته بود که چون در اینجا این عبارت آمده بود هر چه یک رو اصف. برگردیم به کل بحث و دیگه بحث رو به اصطلاح جمع جورش بکنیم و تمامش بحث در این صورت بود که آیا فحص از مخصص لازم هست یا نه و از کردیم اده از اصولی نهر سنت هم گفتم مراد ما از مخصص مطلق دلیل مرگمو استادن در آخر بردن او مطلق دلیل نه خصوص مخصص خب اینها تصرفه ما بیایم یکی یکی مطالبی رو در زمین همینجوری نقطه اول دوم، نقطه اول دوم،, دوم، سه و چار رو مرتب دارید یک حالا ما بحث رو به همون بحث ظاهریش مطرح میکنیم آیا فصل از مخصص لازم هست؟ اگر ما عموم قانونی داشتیم به احتمال مخصص می‌دادیم. آیا فحث از مخصص لازم هست؟ ارس کردین مرموم و از دلیل رو به حکم عقل درار دادن ما دیروز ارس این به حکم اغلاست نه به حکم عقل. خود این مسئله هم اقلائیه خود این مسئله هم احکام عقلیه نیست مرتباً در این عقل عملی نه بوده جزه احکام عقلیه ما در عقل عملی رو ظلم و به اصطلاح احسان و اداره رو اینا ها بیدنیم یا معیارشو کمال و استکمال بیدنیم هر خود رو باشه فرقی در جد نمید. این جزء احکام عقل نیست کند این جزء سیر و اقلائ و مراد ما از سیر آقلائیه ممکن از در یک جامعه یک جوفه هست باشه در یک جامعه این طور باشه به قانون قانونگذاری به نحوه ابلاغ به نحوه رسانه ای کردن و بعد هم تأثیر داره پیشرفت و پسرفت اجتماعی وضع اجتماعی امکانات خبررسانی عدم امکانات خود جامعه اعراف عرفی که جامعه داره سابقه قانونی بودن در جامعه من ارز کردم جامعه داشتیم، که حتی سالها قبل از اسلام اینها حالت قانون داشتن اما خود مکه و مدینه حالت قانون نداشتن نه بود. قانون در جمعه تا مدون نبود خیلی از کشور دیگر ایران هم نبود قانون بیشتر هم بود که شاه میگو هرچی شاه میگو میشه قانون هرچی ایشون بله شد و هدف تأسیس قانون در زندگی بشر چه از قدیم و چه تا حالا همیشه این بود که یک امری در اونجا باشه خارج از شخصیت شاه شاه هم به اون مقید بشه سلطه خاکم هم به او مقید بشه مثلا مشروطیت رو که شما که تا مرحوم دارید نگاه رو هدف از تقریب نایمی بره مشروطیت همینه که ما بیاییم کاری بکنیم که در کشور در منبکت هر جو کسیم در شهر در روستا یکیه امره قانونی باشه و این قانونی خارج از شخصیت همه باشه از شیخ عشیرو و از خدا و رئیس ده و شاه و شاهنشاه انشاء و از شخصیت اونها خارج باشه و اینها همه به او التزام داشته باشند. این اسمشون مشروطه مشروط این کلمه مشروطه رفت این منو به کار برده الان که ایتماکان پس بنابراین به نظر ما این مطلب که های فحص لازم هست یا فصل لازم نیست این از قضایایی است که نمی‌تونیم ما بهش جواب واحد بدیم این به سیره اوغلاز نکته اوغلایی داره نظام اجتماعی داره نظام قانونی داره کیفیت خبررسانی داره امکانات خبررسانی داره چقدر امکانات داره پیشرفت اجتماعی چطوره سابقه های تاریخی چطوره یه مجموعی در اینجا ممکن است در یک نظام فص باشه ممکن در یک نظام فص نباشه و این اصل یا فص مثلا فحس یک نظام فقط به دو تا روزا نگاه کرده باشه فحس یک نظام بیشتر باشه مراجعه به فرماندار و شهردار و فلان مثلا فحس افراد دیگری باشه و به حکم عقل هم نیست بنای بر این بر حکم عقل حکم واحدی هم نداره این نقطه اول نقطه دوم اشکالی بود که بعضی از اهل سنت کرده بودن که شما چرا فحس از مجاز نمی‌کنید از اصالت الحیله جایی خب از مخصصم نکنیم اصالتال عموم جایی کنیم این مقدار از اشکالی که این وارد کردی که خیلی که یعنی خیلی اشکالی بیمانه است فارق اساسی این دوتا فقط این نیست که چون اصالتال حقیق و اصالتال حقیقه اصل لحظی است فارق اساسیش اینه که اصالتال حقیقه مجراش در که عمر اجتماعیه در یک زمینه عمومی و عرفه ما صابقا عرض کردیم اصلا در این که وضع ثابت بشه و یک کلمه عرفی باشه باید تفهیم و تفهم اجتماعی روش باشه من با شما یه الفاظی بین خودمون قرار بگیم این وضع نمیشه این لغت نمیشه اصلا این عرف هم نمیشه اساطر حقیقه در این ما اساطر حقیقه اصول لفظی و تو عرف اجتماعی در جای جاری نکنیم که یک امری در کل جامعه جا افتاده تفهیم و تفهم من وقتی میخوام بگم ای ای این معایین میگم آ شما هم که بگید آب رو میفهمم هم تفهیم میکنم هم تفهم میکنم و این نکته اساسیش اینه که باید مثلا تا اونجای کار داره که اطلاع دارن و اطلاع هم به مجرد اطلاع نیست یعنی به این معنا که تفهیم و تفهم بین این مجموعه سد هزار نفرد انجام میشه اگر بنا شد یک تفریم و تفهم اجتماعی انجام بشه وضع جامعه نمیشه با این باشه که ما برای تفریم و تفهم متوقف بشیم آقا یک مثالی گفته ده روزان برم بگردن و مجاز اراده کرده این اصلا با وضع اجتماعی وضع نمیسازه با وضع اجتماعی لغت نمیسازه هدف اساسی از لغت این بوده جریان امر جامعه بوده چون جریان امر جامعه بوده اینا به مجرد اینکه که لحظه از طرف میشینه هر دلی بر حقیقت نداره اما قوانین تو نیست اساتل عموم مراد از اساتل عموم دقت بکنید مراد اساتل عموم لغوی نیست قواعد عموم لغوی خیلی راحت اکم کل عالم این اساسه عموم لغوی این خیلی مشکل نداره مراد از اساتل عموم عمومی قانونیه دقت کردیم اون عموم قانونی برمیگرده به خصوصیات و عرف قانونی که در اونجا خاتمه هر عرف قانونی فرق میکنه از یک و فرد کردن اعراف قانونی هیچ ضربه‌ای ایجاد نمیکنه اما اینکه در یک جامعه مثلا هزار نفر هستن هر دو نفر با هم یک عرف لغوی دارن این خوب انصافا جامعه رو به هم میزنه رفتی با هم دفعه پس اینکه اساطر حیقه جاری میشه بدون مجاز یک نکته ای داره چون اساطر حیقه در عرف عامه و اما اساطر اون در عرف خاصه چون در عرف خاصه باید اونو عرف بررسی بشه امکاناتش و وسایل خبررسانیش وسایل ارتباطاتش به چه صورت طی و انجام بگیره پس این قیاس این دو تا با هم دیگه قیاس درستی نیست مکتب سوم نقطه سوم آیا در اسلام چطور بوده ظاهرش در اسلام به این صورت بوده نسبت به کسانی که در چون به لحاظ امکانات ارتباطات اجتماعی که در اون زمونه که بسیار ضعیف بوده بسیار سخت بوده مثلا فرض کن کسی در خراسان مسلمان شده میخواد بیاد تا مکه و برگرده حدود یک سال خورده تو راه بوده من از کردم چند بار من آقای بوشردی قدس الله نعشین من از بجنورد ما حج مشرف می‌شدن رفت و برگشت 14 ماه طول می‌کشی خیلی هم سخت واقعا انسان گرما سرما تو راه هم باید تابستان‌ها رو تو با راه باشه تو اون هوای گرم زمستان‌ها و با امکانات دیگه در اون زمان این قضاله مثلا ایشون مال 70 سال قبل 80 سال قبل یا حدود مثلا 100 سال قبل نه می کردن رسیدیم به اون زمان که امکانات خیلی محدودتر و خیلی سخر لذا اونهایی که در مدینه بودن اونا همین راه ارتباط عمومی و نزول آیات و مثلا چون مصلیو نماز می خوندن حضور در نماز جماعت و آیه نازل شد این راه متعارف بوده و طبیعتا مثلا اگر یا آم میوارد میشد تا مدتی مثلا دو روز سر روز پنج روز چیزی نبود فحص فعید میکرد اگه طولانی میشد شد یعنی نسبت به خود مدینه یک فحص اونطوری معلوم نیست انجام میشه اما نسبت به کسانی که خارج مدینه بوده همتون که دیروز هرز کردم یه اشاره هرز کردم بعید نیست از آیه نفر بفرمیم که یه فحصی لازم بوده فلاولا نفرمین ک این تفکر برای این جهت بوده بیا سوال بکنه حکم نازل شد نشد آیاتی سنن پیغمبر رو بوده فاللذا بعید نیست که بگیم در اصل اسلام به این صورت بوده نسبت به مدینه هم صح بوده شاد فنس نمی‌کردن همون ظهورات لغزی رو اتفاق می‌کردن اما نسبت به خارج مدینه این وظیفه رو پیغمبر قرار دادن که تفقه و دین و لينذهم ادارهش اداره الهی ان یعنی اون انزار که صفت انبیاء بود مثلا عدیوز اسکندر و فلسفی کران اس این صفت رو به این فقها داده لیون در و هم اداره جلیلهم لعله انصافش، انصافش مجموعهش اینطور به میاد نقطه 4 الان هم همینطور قطعا الان فرق کرده این دیگه جو بحثش نیست الان در زمان ما که نه 100 سال قبل 200 سال قبل 300 سال قبل فرق کرده و دیگه الان ما بحثی که داریم فحث از مخصص نیست چون گاهی وقت باید فحث می کنیم آخش باید عمومی ثابت نیست که فحث از مخصص مخصص بکنیم مطلقی ثابت نیست که فحث از مقید بکنیم یعنی صافاً که الان ما داریم انجام می دیم به این که بعضی از اینها مخصص اصطلاحی نیستن من توضیحش ارز کردن کیفیت جمع بین دوتا دلیله این نیست تازه تو این کیفیت جامعه این دو دلیل هم باز آیان اختلاف داشتن چجوری جمع بکنه مثلا من عرض کردم از اهل سنت گفتن مثلا مسواک زدن سواک مستحبه مگر برای صائم این مگر برای صائم درست در آن بصیغه مخصصه بصیغه تخصیص استثناء لكن در حقیقت اونا تخصیص نفهمیده بودن تخصیصی هم نبوده روایت هم نبوده اینا گفتن چون در روایت داره که بوی بده دهن سائم اقربا امدالله مثلا اتگه با امدالله مدن مز اگر مسواق بزنه اون بو از به میره پس مسواق نزنه تا اون بو بمونه. این تخصیص مستلح نیست این مسواق نزنه تا اون بو بمونه. این در حقیقت یک روایتی از رسول الله در تخصیص نبوده و اصورا لسان تخصیص در جاییست که به مقام جن برگرده مثلا شارع استدلال گفته اکرام و واجب بعد همون شاره تو مقام جعل گفته اکرام و فساال و علما حرام این اصطلاحا تخصیصه اینجا اصلا ممکن است بگه ما تخصیص نیست این مقام امتصال برمیگرده حالا فرض کنید یک آقایی هست به روزه گرفته بوی بد درش اینقدر بده که مسواک هم بزنه وضع محفوظه خب این دیگه برای او تخصیص بنا نداره به اصطلاح به عباراتی اوخرا حکم این این یک نوع وظیفه عملی به در مقام امتصال و در خارجه که این انسان مسلمان اگه دوران هم بشه که این بوی بد بمونه که سواب او گیر بیار یا مسواق بزنی که سواب اون گیر بیار نه مسواق نزن تا اون بو بمونه چون عتیبا با اندالله این برسی به تخصیص نداره اصلا ولی زم برپورده که ما الان با عدله خوب دقیقتانه الان کاری که ما با عدل می اصلا می کنیم اص تقبیر ظاهریش تخصیصه اما در واقع تخصیص نیست یه نوع جمع بین است اصلا تخصیص هم نیست بلکه یک نوع جمع ایست تو ظرف امتصال و قادل بشیم تو ظرف امتصال هیچ تأثیری تو ظرف واقع نمیگذاره تو ظرف جمع نظر بخوام. یعنی برفرزم گفتیم برای سائم مثواد دادن مثلا منشه از بین رفتن خلوف فهم سائم است و اون مثلا تأکید نگهداریش مهمتره برتر هم قابل شد. لکن این فقط در همین حد یعنی حد قصش اینه. حالا اگر مسواک زد اون خلوف فهمیشتم سواب میسواک نمیده. اگر تخصیص بود دیگه ثواب مسواک نداره اگر ما اینجوری بگیم مستحب ثواب الا للساهم این معناش اینه که برای سائل یه استحباب نداره ثواب نداره. طبق این جمع ثواب برای س محفوظه. ثواب نهایتش اون بویه برده ها می خره ولی سواب خودش محبوظه پس بنابراین اون چه که ما داریم الان فحص از ادله است من حیث المجموع اون فحص از مخصص میست و آیا این فحص لازم است؟ یعنی از کلم مرمونایم لا خلاف ولا اشکال که این فحص از این جد این دیگه قطعن یعنی بدون شک و بدون شبهه هر فقی بخواد نگاه بکنه به احکام این برایش کاملا واضح و صد درصدی است که باید بحث از ادله بکنه نکته دیگه آیا نکته بحث چیه به قول کشف از مراد اینا علم اجمالی اینا نیست اولا نکته از و نکته بحث اصولاً یه نکته اجتماعی و علمی است و قانونی است قانونی است و ربطی به کشف مراد متکلم و از این حرفا هم داره اصل نفس نکته است اما ذکر علم اجمالی اینا ظاهرا من فکر میکنم یک مقدمه در ذهنشون بوده به اصطلاحه آیان یک مقدمه مطعیه در ذهنشان بوده اون مقدمه مطعیه فرض انصداد بوده که ما مثلا راهی نداریم به, به احکام برسیم و میدونیم احکام هست پس از این راه ها بریم تا بهش برسیم مثلا اعتماد به زن بکنیم مثل بحث دلیل انصداد به ذهن من این باشه یعنی به ذهن من ذکر علم اجمالی با یک فرض پ در ما انصداد نداریم اصلا شریعت خاتمه که احکامش خاتمه هست رسانه و رساندرش هم باید حالت خاتمی داشته باشه. این نیست که احکام توش انصداد پیدا بکنه. ما به مقدار کافی در مقدار زیادی از احکام شریعت مقدسه علم و علمی داریم اصلا نوبت به انصداد نمیرسه مزافن به اینکه که من همیشه عرض کردم علم اجمالی نتیجه این او اصل عملی است که اسمش و اصلا به نظر ما صحیح نیست که ما فهم شریعت مقدسه و احکام نورانی شریعت مقدسه با یه اصل عملی توجیه بکنیم اصل عملی رتبه شتبه یه جهله یعنی ما واقع رو درک نکردیم به اصول عملی مراجعه میکنیم ما که داریم احکام رو در قرآن و سنت میبینیم چه داریم داریم به اصول عملی مراجعه کنیم چه نکتهی داره به علم اجمالی پس این مطلب به عنوان علم اجمالی. مطلعت کردن حالا منحل بشی یا مطلب درستی نیست نکته پنجم یا شیشم اونطور نوشتن که ما آقای خوبی نوشتن که محتضای این علم اجمالی ما به مساده را آمه اینا مراجعه کنیم بعدشونگر نمیشه و لازمش میاد که عمر آدم تمام بشه و افکام استظهار نشه این که خب حرف عجیبی است خب اگه اون وادام تمام بشه بشه. داخل وقتی احکام نیاز داره با قول خداوند علم اجمالی منحل حل نشده و باید فحص بکن لازمش این نیست که ما فحص نکنیم. لازمش اینه که بگیم حالا که احکام زیاد شده، ابواب زیاد شده، عمر ما هم کفایت نمی‌کنه، همین طریقه الان مخرج تبعیص در تقلید بشه یه فقيه توی مکاسب کار بکن. یه توی اجاره کار رو توی فحص کنه. و صلات و صوم و هر فقیه در یکی تا اون استقراء کامل بشه حالا ببین عمرها وفا میکنه. راهش اینه اندر فلسفه که انصافاً مثلا الان امکانات فراهم شده عمرها وفا میکنه ما یکی تنبلی ببین تو اجراه الا عمرها وفا میکنه که ما مراجعه بکنیم البته انصافش باید قبول بکنیم که با این امکانات پیشرفته‌ای که برای کامپیوتر رو مثلا به اصطلاح شده به دیجیتال انصافاً بهتر ازین میتونیم کار بکنیم یعنی میتونیم مجموعه فقیه بسیار خوبی رو تهیه بکنیم ممکنه هزار نفر 2000 نفر در تدوین زحمت بکشن روزی‌ها و چندین میلیون ساعت کار درو سرد بشه وقت به راحتی بتونه هر کسی که میخواد در تک تک مسائل تاریخ مساله تدوین مسئله روایات سنن فتاوای سنی ها شیعه روایات شیعه متون مختلف اشکالات همه‌رو میتونن در طی فرسنگ پنج دقیقه پیدا بکنن مشکل نداره مثلا این روایت واحده چند نفر چیه از کی آورده تا زمان ما چند نفر قبول کردن چند نفر قبول نکردن که قبول نکردن مناقشه سنری کردن دلالی کردن و صدور کردن تمام رو میشه انجام داد البته الان سخته با این امکاناتی ما الان داریم اما امکاناتش هست فعلا نداریم به فعلیت نرسیده من نظرم اینه که این کار قابل تحقق و خیلی راحت یعنی اگر اون اصول کبری کلی شاد بگیره ممکن است یه فقیه حتی در سن سی 40 سالگی تمام مسائل فقه رو در تمام ادوار و شونش سنی شیعه زیدی خارجی، عبادی اسماعیلی در تمام ابعاد و شونش کاملا از از اول طهارت تا آخر دیات و همه رو یاد بگیره علی این اشکال معلومهای خویی هم وارد نیست البته نظر ما اینه که چون از کردم این سوال مطرح کردم معلوم ناینه میگه میشه آهای خوگی منحل میشه میگه مثلا نمیشه که میگه میشه می این جوابش اینه که آیا میشه نمیشه برمیگرده به خصائص فقی و این دیگه کار ماست که اون فقیر رو موفق بدونیم یانه اختصاص به کتب اهل سنت هم نداره که آهای خوگی مطرح برمیاد الان نقد فهم خیلی از سوال ما هستن کتاب‌های فقيه هم نوشتهن که هم با مراجعه به وسایل دلیل دیگه‌ها فاطمه مصمم صحیحه کی دیگه با مراجعه به وسایل خب ما از مشایخی داشتیم خدا رحمت کنه منوهای افتهی قدس الله نفسه ایشون معترض بود که به نظر من برای فقیه مجزی نیست که با مراجعه به وسائل فتوا بده باید به مسادر اولیش هم نگاه میکنه و ما از کردیم انصافا اگر فقیحی دقیق و نظر باشه و مقید باشه به زرافت های متنی حق با ایشانه چون الان وسائل با مسادر اولیه چیزی حدود نود درصد اختلاف داره که این خیلی بالاست نسبت 90 در سهر یه نسبت فوق العادهیه بل. خب حالا اون آقا اعتوادش این آقا پیدا نکرده این مقدار نرسیده علایه حالا ما به نظرمون اینه که این مطلبی که ایشون فرموندن دو انحلال نه فقط به جهت دلیل جات مختلف داره که آقایی که در بحث فقهی تشریدان دیدن به نظر ما اطلاع و فقه عام اسلامی کاملا ضروریه برای فقهیه این اوقات معنای روایت رو عوض میکنه قید میاره نفی قید میکنه قید رو بر با یه ظاهرهاد عام به مراد خاصه، گوی خاصه، یعنی انصافاً جو رفیعی به نظر ما و آرا اطلاع بر آرا اهل سنت و سیر مسئله به ذهن ما کاملاً تأثیر داره، به تعبیر آرون علم اجمالی بدون اون محل نه، ما اهل علم اجمالی نیست، این علم اجمالی بدون اون محل نمیشه و نیاز شدیدی هست به مراجعه البته اونم که مراجعه نمیکنن و دقت بکنن به اونا هم نمیشه حمله کرد بگیم تساهل میکنن تسو نه این دیگه نوع اجتهاد دیگه اون آقا میگه برفرزم که آراء اهل سنت باشه ما کاری به نداریم حتی اگر روایت ما در مصادر اونها باشه من با این های عرض میکنم که روایت ما تو مصادر اونها اومده ببینید شما اگر کتاب جواهر خدمتون باشه آنیا جلد 4 5 و چند بحث تکرار در مس در شرایط در لا تکرار فیلم مس بعد صاحب جلال گفته که این روایت ندارست و اجماع است و درش اجماع است و یه روایتی هم نحب کرده که دعایت بریم مطلب نداره بعدم فرمده است ادهی گفتن که کرا... کراحت بیش از این در نمیاد چون. من ارز در کتاب ترمزی یعنید کمه در ترمزی شاید من غیر از این مورد نمیم در سنن ترمزی که از با سند خودش به نظرم تو زهنم از ایام نجف از سفیان سوری باشه ان جعفر ابن محمد و به عنوان روایت از رسول الله نیست از خود کم آلا تکرار فلم هست خیلی عجیب عین این فتوایی که در شراحی آمده عین این فتوا در کتاب اهلسانه از زمان ساده نام شد. و آیینم نوشتن که ما این روایت نداریم. خب ممکن است کسانی که اعتقاد به این راه ندارن یک میگن این مقدار که در کتب احل سنت زیاد نیست تا علم اجمالی مارجل روش بگیره یعنی <تصفيق> مانع انحلالش بشه دروش بگیره نگه نگیره و دوم این که به اصطلاح برفرضم در کتب احل سنت باشه حجیت نداره اشکال نشه ما معتقدین راه حل قضیه به این دعاویه طرفه نیز به مبانی فقهی برمیگرده رو اون مبانی فقهی یکه در مقانی فقهیشون این وجود روایات در م... یا مثلا کلمات احل سنت تأثیر میدونن تو مرحله علم اجمالی اده هم میدونن دیگه به همین بردار اکتفا میکنیم و صلی اللہ علیه محمد و آله تا حد.